افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه های هر ملتی بخشی از هویت اون ملت به حساب میان و اقوام و ملت ها تاریخشون رو با افسانه آغاز میکنند دنیای پرپیام افسانه ها دنیای رمز و رازه رمز و راز هایی که با زندگی روزمره ما گره خورده و سینه به سینه و به طور شفاهی منتقل شدن. افسانهها علاوه بر ارزش و اهمیتی که به عنوان میراث فرهنگی هر قوم دارند ابزاری برای سرگرمی، تعلیم و آموزش و عبرت آموزی هند. درج در افسانهها صدگونه گونه پند، کودکان افسانه ها می آورند ها قصه های زندگیاند و داستان خو خوب گرفته با عشق و امید و مهربانی آرزو می کنیم زندگیتون پر از اتفاقای خوب و شیرین باشه عزیزان همراه افسانه های ملل ما را با زندگی آداب و سوم و به طور کلی فرهنگ و تاریخ مردمان هر سرزمین آشنا می کنه. این هفته برای شما عزیزان افثانه ای رو به نام سه فداکار از سرزمین کره انتخاب کردیم برگرفته از کتاب جزیره عروس نوشته جیمز ریودام و ترجمه رزوان دسبولی این افسانه گوشه ای از زندگی باورها و طرز تفکر مردم سرزمین کوره رو بیان میکنه که فرهنگی کوهن با قدمتی پنج هزار ساله دارن سالهای پیش در گوشه از این دنیای بزرگ، در کشور کره امپراتوری حکومت می کرد که سه وزیر به نامهای وزیر کانگ، وزیر سوان و وزیر چونگ داشت. این وزیران با وجود اینکه که سن سالی از آنها گذشته بود، اما همسر اختیار نکرده بودند. این موضوع سه کنچکاوی احالی شهر و خدمه قصر و حتی امپراتور را برانگیخته بود. سه وزیر هر از گاهی که برای سرکشی به امور حکومتی به میان مردم می رفتند، از گوشه و کنار چیزهایی به گوششون می خورد که اونا رو به خاطرات سالهای دور می کشند. بله، گاهی پچپچه های مردم کچه و بازار با دیدن سه وزیر شروع می شد من تعجب می کنم وزیرای شهر ما چطور با این سن و سالشون هنوز اهل و ایالی ندارن <تصفيق> لود ایبا داشتن <تصفيق> چه ایبا درسته که سنی از اونا گذشته ولی خب اونا وزیرای این شهرن دخترای زیادی حاضر با اونا ازدواج کنن و زندگی مرفعی داشته باشن یعنی اونا تا به حال زنی نشدن؟ بای خدای من مگه ممکنه این یه پاجعه است؟ بله موضوع ازدواج نکردن سه وزیر برای همه سوال بزرگ بود تا اینکه بالاخره امپراتور طاقت نیاورد و روزی سه وزیرش رو به حضور فرا خاند تا علت این امر را از اونا جویا بشه آقایان از شما سه نفر سوالی دارم. البته این تنها سوال من نیست. این سوال خیلی از مردم شهره. قربان چه سوالی؟ قربان با کمال میل در پاسخ خوبی آمدید. قربان هر سآلی دارید بفرمایید ما در خدمتیم سال هاست که سوالی ذهن منو به خودش مشغول کرده <تصفيق> البته ممکنه این سوال کمی شخصی و خصوصی به نظر بیاد ولی خب من مایلم بدونم چرا شما سه وزیر من تا به حال ازدواج نکردید <تصفيق> سه وزیر که انتظار شنیدن چنین سوالی رو نداشتند به تعجب به یکدیگر نگاهی انداختند و سکوت کردند. امپراتور با قدمهای کوتاه و آهسته به اونا نزدیک شد و پرسید: آقایان، آیا سؤال من سؤال بی جایی بود؟ خیلی قربان، خیر قربان. سؤال شما خیلی هم بجا جا بود نا. اما ام. اما چه؟ من مایلم دلیل ازدواجی نکردن شما رو بتونم حتما شما برای این کارتون دلیل خاصی داریم وزیر چونگ شما اول شما بگو ببینم دلیل ازدواجی نکردن چی؟ من من وقتی دانشجوی جوانی بودم با دختری به نام میجو که از کودکی به او علاقه داشتم ازدواج کردم ما وضع خوبی نداشتیم و گاهی حتی تکنانی هم توی خونمون پیدا نمی‌شد برای همینم من تصمیم گرفتم تحصیلات رها کنم و در مزرعی به کار مشغول بشم اما همسرم منو به ادامه تحصیل تشویق کرد و از من اجازه خواست تا برای تأمین مخارج زندگیمون خیاتی کنم. من هم از روی ناچاری پذیرفتم خلاصه من به درس ادامه دادم و میجو برای همسایه ها لباس میدوخت و با پولی که از این راه به دست زندگیمون میچرخید تا اینکه تا این که چه؟ ادامه بده تا این که یه روز وقتی به خونه برگشتم دیدم همسرم میجو در حال خوردن چیزیه اون به محض برود من به خونه اون چیزو پشت سرش پنهان کرد من که سخت گرسنه بودم فکر کردم فکر کردم همسرم خوراکی ها رو به تنهایی میخوره و به فکر من نیست با عجله جلو رفتم و گفتم توی دهنت چی بود؟, بود؟ اون چی, چی بود پشت سرت قایم کردی؟ زود به من جواب بده هیچی هی هی هی هی هی هی هی من،, من فقط داشتم ولی من به اون فرصت ادامه حرف زدن ندادم و سیلی به صورتی زدم و با زور مشت دهنشو باز کردم از چیزی که دیدم تعجب کردم توی توی دهن همسرم یه تیکه گل بود فقط یه تیکه گل بی ارزش من از همسرم پرسیدم این گل چیه چرا اونو از من قایم کردی چون عزیزم این گل این... من فقط تو فقط چی میجوری چی من من فقط این گلو برای تر کردن گلوی خشکم میخوردم آخه چیز دیگه نداشتیم و گلو خیلی خوش شده بود نمیتونستم با گلی خشک به دوخت و دوستم ادامه بدم چونگ وزیر چونگ با شنیدن این حرف با شرمندگی و به آرامی در حالی که دستای همسرشو در دست گرفته بود سرشو به زیر انداخته و گفت میجو میجو, میجو منو ببخش من من فکر کردم کردی؟ چونگ من هیچ وقت چیزی از و پنها نمی کنم عرق شرم بر پیشانی وزیر چونگ نشست اون یه بار دیگه از همسرش معذرت خواهی کرد به چشمان معصوم همسرش نگاه کرد و از اینکه با اون این رفتار رو داشته در دل خودش رو ملامت و سرزنش کرد و بعد با شرمندگی توی چشمای معصوم همسرش خیره شد و گفت میدونم میجو میدونم تو تو همسر خوبی هستی برای من من من, من اشتباه کردم چیزی نگو حالا برای کمی کن منم هد این لباسه تا یه تموم کنم باشه عزیزم هرچی تو نگی فقط خودتو زیاد با کار خسته نکن <تصفيق> سکوت سنگینی در اتاق قصر سایه افکند. نور خورشید از پشت پنجره گرمای اندکی را به داخل قصر وارد کرد. امپراتور آرام به طرف میزخم شد و لیوان آب را برداشت و جرعه نوشید و بعد هم به نقطه نامعلومی خیره شد. وزیر چونگ چند قدمی برداشت و به طرف صندلی کنار پنجره رفت. امپراتور آخرین جرعه آبی رو که در دست داشت سرکشید و بعد با اشاره وزیر جنگ رو به نشستن دعوت کرد اما وزیر جنگ که هنوز ذهنش درگیر ماجرای زندگیش بود متوجه اشاره امپراتور نشد و از پشت پنجره نیمه باز به درختان تنومند با خیره شد امپراتور به او نزدیک شد و آرام پرسید بچه شد؟ بر سر همسرت چه آمد؟ من بعد از اتمام تحصیلاتم به فرماندهی زرو بزرگترین جزیره در تنگه کره انتخاب شدم مدتی بعد با کشتی به همراه همسرم برای سفر به جزیره زرو آزم شدیم اون روز دریا طوفانی بود و ناآرام. کشتی هر هرچه جلوتر میرفت دریا طوفانی تر می و هر لحظه احتمال غرق شدن ما میرفت. رفت همه بانگرانی چشم ناخدا که مرد چاق و کوتاه قامتی بود دخته بودند من و همسرم میجو هم ترسیده بودیم ها کارگران کشتی با شتا و دستباچکی به این طرف آن طرف می دویدند. خروش هم دریا همه مسافران کشتی رو به وحشت انداخته بود ناخدا که مرد خرافیی بود نگاهی به میجو انداخت و گفت بیوه زن اجازه داده وارد کشتی بشه خدایان از اینکه که ما زنی رو در کشتی به همراه داریم خشتگیر و ناراحت هستند همه نگاه ها به سمت میجو کشیده شد اون با ترس و تعجب به همسرش نگاه کرد وزیر جونگ از شنیدن این حرف ناخدا ناراحت و شگفت زده شد او این حرف خرافه رو قبول نداشت و با ناخدا بر سر این موضوع وارد بحث و جدل شد ناخدا این حرف فقط یه خرافه است خرافه؟ مرد جوان من تمام عمرمو توی کشتی و روی این دریا گذروندم و هیچوقت اجازه ندادم زنی وارد کشنگه من بشه اما امروز ببینم اصلا تو کی هستی؟ من چنگ هستم امروز به فرمانده جزیره زرو انتخاب شدن این خانومم همسر منه ما داریم به اونجا میریم ک... با این طوفان نمیتونید هیچه بری این زن ما رو به کان مرگ میکشونه بله های خشب خود را از اسباب، مابندگان نادان و قافلت دور کنید این زن بدون اجازه ما وارد کشتی شده من قول میدم همین الان اون رو از این کشتی بیرون بید دادن. صدای ناخدا در صدای خروش انواج دریا گم شد وزیر چونگ نگاهی به چهره آرام اما وحشت زده همسرش انداخت ناخدا همچنان به دعا ایستاده بود و کارگران کشتی در رفت آمد بودند ناخدا رو کرد به وزیر چونگ و گفت احتره، هیش از این خدایان رو خشمگین نکنیم اونها به خاطر ورود همسرتون خیلی عصبانی و خشمدینند این یه خرافه است حضور هیچ زنی باعث طوفانی شدن دریا نمیشه خداوند طوفان رو آفرید و اونو در کنار دریا قرار داد طوفان با دریا زندگی میکنه باور شما یه خرافه است یه خرافه من من اجازه نمیدم کسی به همسرم نزدیک بشه در این موقع با اشاره ناخدا چند کارگر کشتی به طرف وزیر جنگ حمله شدند و سعی کردند اون را به داخل کابین کشتی ببرند میجو که سخت ترسیده بود آرام به لبه کشتی رفت و بدون کوچکترین حرفی خودش را به دریا انداخت اوجهای بیرحم دریا میجو رو برای همیشه از من جدا کردند. اون اون زن وفاداری بود که زندگیشو فدا کرد تا جان ما رو از مرگ نجات بده اون, اون در زندگی باعث رشد و ترقی من شد من هرچه دارم از فداکاری و گذشته همسرم میجو دارم قطرش که آرام از گوشه چشمان وزیر چونگ. بر روی گونهش چکید امپراتور از شنیدن این ماجرا غمگین شد و با ناراحتی آهی کشید و زیر لب گفت چه سرگذشته گذشته زن بیچاره قربان بعد از مرگ چون این زنی فداکار من هرگز نتونستم ازدواج کنم و همیشه به یاد فداکاری و تلاش همسر وفادارم هستم امپراتور که سخت تحت تأثیر فداکاری همسر وزیرش قرار گرفته بود سکوت کرد و در دل قدردانی و وفاداری وزیر چونگ را تحسین کرد امپراتور پس از پی بردن به راز ازدواج نکردن وزیر چونگ آخرین جرعه آبی را که در دست داشت سر کشید لحظه ای به فکر فرو رفت و بعد به وزیر سوان نزدیک شد و در حالی که به چشمان درشت و سیاه اون خیره شده بود گفت شما چه؟ حتما شما هم برای ازدواج نکردنتون دلیلی داشتید اینطور نیست جناب سوان بلی من هم زندگی پرفراز و نشیبی داشتم. زمانی که جوان بودم با دختری به نام کای ازدواج کردم. ما زندگی خوبی داشتیم همسرم زن زیبا و مهربانی بود ولی ولی دیی از خدا بی خبر و حسود. به من تهمت ناروایی زدن و باعث تبعید من به سرزمینی دور شدن وقتی میخواستم همسرم کای رو ترک کنم اون گریه میکرد و مدام از من میپرسید سوال سوان, سوان، کهی برمیگردی کهی عزیزم من روزی برمیگردم که دو تخم مرگ روی هم قرار بگیرم و منظور از این حرف این بود که هیچ وقت بر نمی گردم. همسرم این حرف رو جدی گرفت و همه ی وقتش رو برای قرار دادن دو تخمه مرگ روی هم صرف کرد من در تبعید لحظه های سختی رو گذروندم و مدام از خودم میپرسیدم که چرا باید به خاطر کاری که انجام ندادم عمرم و توی این تبعیدگاه دور بگذرونم اما از دست من کاری ساخته نبود و من برای اثبات بیگناهیم سند و مدرکی نداشتم دلم برای همسرم کاهی میسوخ از اینکه دیگه هیچ وقت اونو نمی بینم، غمگین و ناراحت بودم. اما بالاخره بعد از پنج سال تبعید، تحقیقاتی در مورد من انجام شد و بیگناهی من به اثبات رسید و آزاد شدم. من که از شوق آزادی سر از پا نمی خوشحال به ده برگشتم. به خونه که رسیدم همسرم کای همچنان در گوشه نشسته بود و در حال قرار دادن دو تخم مرغ روی هم بود او اون با دیدن من از تعجب از جا بلند شد از خوشحالی جیغ بلندی کشید و از حال رفت و بر زمین افتاد من با نگرانی به طرفش دویدم چند بار صداش زدم و سعی کردم اونو به هوش بیارم. اما آروم باش آروم باش. وزیرسوان با دستانه صورتش را پوشاند و دیگر نتوانست چیزی بگوید. صدای گریه او توی فضای قصر پیچید. امپراتور از سر مهر و نوازش دستی بر سر وزیرسوان کشید. چند لحظه بعد وزیرسوان به آرامی دستانش را از صورت پر از اشکش برداشت. وزیرکانگ لیوان آبی را به طرف وزیرسوان دراز کرد. وزیر سوان بعد از نوشیدن آب نفس بلندی کشید و ادامه داد کای مهربان من دیگه هیچ وقت به هوش نیومد هیچ وقت قربان به این دلیله که من دیگه بعد از مرگ همسرم نتونستم با هیچ زل دیگه ازدواج کنم امپراتور این بار هم از شنیدن ماجرای زندگی یکی دیگر از وزیرانش غمگین شد و در دل وفاداری وزیر سوان را تحسین کرد سکوت سنگینی در اتاق خوک فرما شده بود و این بار نوبت وزیر کانگ بود که علت ازدواج نکردنش را برای امپراتور بازگو کند و پرده از راز دیرینه زندگیش بردارد. امپراتور چشم دهان وزیر کانگ دوخت و وزیر کانگ با صدای آرام گفت قربان، زمانی که بسیار جوان بودم و کم تجربه پدر و مادرم اصرار داشتن که من با دختری به نام جین نهو که در همسایگی ما بود ازدواج کنم. همه می گفتن دختر نجیب و سربراهیه و هر مردی باش ازدواج کنه حتما خوشمهد میشه. شه. ولی من چیزی درباره ازدواج و زندگی مشترک نمیدونستم و به پدر مادرم گفتم آمادگی این کار رو ندارم. اما اونها نپذیرفتن و مدام از آرزوهایی که سالها بر من در سر داشتن میگفتن و اینکه دوست دارم قبل از مرگشون نبه های قد و نیم قدشون رو ببینن. الاخره من به خاطر اونا مجبور شدم با جنه ازدواج کنم. اون همونطوری که شنیده بودم دختر خوب و نجیبی بود ولی من از اون خیلی خجالت میکشیدم. شب عروسی وقتی من و اون دختر که حالا دیگه همسر من شده بود تنها شدیم ترسیدم. راستشو بخواین من هیچ وقت با هیچ دختری عرف نزده بودم و هم از این کار خجالت میکشیدم هم وحشت داشتم چه خب. من توی اون شرایط نمیدنستم باید چی بگم تب چقدر بر جیبی داشتم دستم میلرزید سرم و زیرانداخته بودم جرات نداشتم حتی به صورت هم سلام نگاه کنم خب چند لحظه بعد احساس کردم کسی آستینمو رو عقب ترجم کردم ولی بعد تردید و بدبینی همه یه وجود منو گرفت. راستش فکر کردم پای مرد دیگه ای در میونه و به جز من کس دیگه ایم اونجا هست. تصور خیانت همسرم منو به شدت ناراحت و عصبانی کرده بود. طاقت نی بردم و از شدت ناراحت یا عصبانی فوری از شدم بدون اینکه که پشترم رو نگاه کنم همسر خودم رو ترک کردم. بعد از سال ها هنوزم صدای همسرم جینهو تو گوشمه کانگ برگرد برگرد وزیر کانگ که صورتش از خیز شده بود در سکوت عمیقی فرو رفت قطر اشکی آرام بر گونش قلطی گویی یک بار دیگر صدای همسرش جن در گوشش می بیچید کانگ کانگ برگرد برگرد برگرد امپراتور به قاب عکس بزرگ و شکیلی که بر دیوار اتاق خود نمایی میکرد چشم دوخته بود. در قاب عکس، ملکه جوانی با قامتی کشیده تمام قد ایستاده بود و لبخند ملیحی بر لب داشت. ساعت طلای قصر سه بار نواخت. امپراتور رو برگرداند و گفت: «قضاوت درست کار سخت و دشواریم. خب بعد چه اتفاقی افتاد بعد از ترک همسرم جنهو وارد معبد شدم با چند سال آموزش دیدم و بعد از آموزش هایی که با موفقیت گذارندم به سمت کلانتر منطقه نماینگ انتخاب شدم مردم اونجا به من احترام زیادی میگذاشتن و من هم با اونها رفتار خوبی داشتم تا اینکه روزی یکی از احالی سراغ من اومد و گفت جناب کلندر ترکانج، من اومدم تو از شما خواهش کلم برای آرامش دختری که سالها در انتظار دعا کنید در انتظار؟ در انتظار چی؟ کی؟ در انتظار اومدن همسرش جناب کانگ همسرش؟ بله قلبان در همسایی ما خانواده زندگی میکنند که تنها دخترشون سالها قبل با مردی ازدواج کرده اما داماد شب عروسی اونو تک کرده اون دختر بعد از گذشت سالها هنوز با همون لباس سفید عروسی به دور دست ها خیره مونده و در انتظار اومدن همسرشه بختر من که کونکاف شده بودم به شراغ اون خانواده رفتم و با کمال عروس خودم رو دیدم مال زن همسرم جن هود هو با همون لباس سفیده هروسی اون در بستر مرگ بود قربان آروم به نزدیک شدم زانو زدم و به چشمای تیاهی خیره شدم مم. همون موقع اختلاف کردم کسی از پشت سر آستین لباسم و دوباره میکشنه اقب بلافاصله برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم هیچ نبود، هیچ کس. من بودم و همسلم که روبروم در بستر من گفتاده بود و تکان نمیخورد با خودم گفتم خیلی کیه کسی که که هستینم رو میکشه بدون اینکه که نگاه کنم با بلندی گفتم کسی اینجاست؟ اما جوابی نشنیدم دوباره با دقت پوشترم رو نگاه کردم چیزی که دیدم منو سر کرد یک میخ از میز چوبی زده بود بیرون به آستین لباس من گیر کرده بود با هر تکانی که میخوردم آستینم کشیده میشد جب همینجا بود که متوجه اشتباه بزرگ خودم در شب عروسیم شدم خدایا منو ببخش من در مورد همسرم اشتباه کردم اون شب به جز من و همزرم کسی دیگه اونجا نبود. همسر من جین هو قربن. زن نجیبی بود که من خیلی زود دربارش قضاوت کرده بود. درست دارم. خدای بزرگ منو ببخش. جین یا عزیز تو هم بلو ببخش. وزیرکانگ همچنان سکوت کرده بود لحظه چهره نجیب همسرش از نظرش گذشت و بی اختیار چشمانش از اشک سرخ شد قمی سنگین در سینهش و تاب میخورد و راه نفسش را بسته بود وزیرکانگ به سختی نفسش را بیرون داد و با صدای لرزان ادامه داد من بلا حاصلت همترم خواستم که منو ببخشم ولی جین هو در ارز چند دقیقه قربان از دنیا رفت و منو باقم خودم برای همیشه تنها گذاشت من سالهاست هاست به خاطر قضاوت نادرستم درباره همسرم خودم رو سرزنش میکنم بعد از حرف های کانگ سکوت سنگینی بر همه جا سایی انداخت دیگر چیزی به طور افتاب نمانده بود امپراتور در حالی که گریهی بر ابرووانش افتاده بود با قدم بلند تا آستانه در اتاق جلو رفت و به تندی برگشت بعد به تک تک وزیرانش نگاه کرد و گفت شما هر سه نفر زندگی مشترک قمنگیزی داشتید همسران شما زنانی فداکار و پاک دامن برای شما بودند یادتون باشه این مقام و موقعیتی و که امروز نصیبتون شده مدیون اونا هستید درست قربن آقایان من به داشتن وزیران قدر شناس و وفاداری مثل شما افتخار میکنم و مطمئن باشید که همسران شما در کنار شما هستند و اونام به داشتن همسرانی چون شما بر خودشون میبالند امپراتور به سه وزیرش نزدیک شد و دست اونا رو سمیمانه به گرمی فشرد بله، اون شب اگرچه پرده از راز غمانگیز زندگی سه وزیر برداشته شد اما مردم شهر به دستور امپراتور شبیه پر از شادی و شور در حیات قصر گذروندند و امپراتور سه وزیرش را تحسین کرد و بعد رسما از وفاداری آنها قدر دانی کرد عزیزان آن چه شنیدید افسانه سزن فداکار بود از سرزمین کره، برگرفته از کتاب جزیره عروس نوشته جیمز ریودام، ترجمه رزوان دسفولی یادمون باش افسانه ها حکایتی بازگو شده از هزاران سال قبل نیستند اونا روایت زندگی روزمره ما و شما هستند که درسها و پیاماشون میتونه در زندگیمون مفید و کارساز باشه آرزو میکنیم افسانه زندگیتون پر از اتفاقهای خوب و شیرین باشه دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش شما میتونین با تلفن گویای 162 تماس بگیرید و پیشنهادات و انتقاداتی رو که دارین با ما درمیون بذارین. سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075 به ما پیامک بزنین و نظرات خودتون رو در مورد افسون افسانه بگین. نشانی ما رادیو نمایش نقط آی آر تنظیم برای رادیو زینت سالحپور راوی فریبا متخصص بازیگران مهدی نمینی مقدم اکبر ملایی نگید خاج نصیر احمد گنجی علی اسقر دریایی ایوب آقا خانی اسماعیل بختیاری محرخ افزلی کارگردان بهرام سرورینژا افکتور محمد رضا قبادیفر صدابردار، بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی هم. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر خدا یار و